وقتی ما نماز بخونیم هر روز حداقل ده بار میگیم اهدنا از سرات المستقیم چی میخواییم؟ کم انکسانی که وقتی میگن اهدن از المستقیم بفهمن چی میخوان؟ چون مبهم سراط المستقیم ولی ما با خود آیات دیدیم نه مبهم نیست روشن و واضح خدا دلیل کلمه با کوتترین عبادت واضح ترین تفسیر برای این را کردن فرمودن و انعبودونی حدا صراط مستقیم بندگی در برابر فرمان خدا اطاعت فرمان خدا سراط مستهلی برابر این تا اینجا روشن شد که ما یک راه بیشتر نداریم همه انسانها، ها سیاه و سفید کوتاه، بلند بیستواد ما فقیر و ثروتمند یک راه در زندگی از اول سن بولو تا آخر بیشتر نیست ای کسی هم بخواد سرات موسیقی درست کنه خودش به اجکا کنه نماز بخونه و به یهدنه سرات موسی یکی بیشتر نی اوناش گفتن سرات های مستقیم همش غلط ولی یه دونش درست کنم اونیش خدا در قرآن فروده که انعبودونی در برابر من خدا که معبودم همتون به عنوان بندگی به عبودیت گوش به باد بدین نه آسمونیه نه زمینیه نه دریایی اینه فرمان از خدا اطاعت فرمان از ما این راه ماست ما صبح از خواب بلن میشیم خدا چی گفته نماز بخون کرد سراط مستریم رفته بیرون ما مول کس بخار کس بخار واجب برای نفق زن بچه سراط مستقیم تورا زنان رو دیدیم نگاه نمی کنیم مستریم مستقیم خواهیم حرف بزنیم دروغ نمیگیم سراط مستقیم همین زمن تعمیل نیازهای مادی ا زمانی دیگه نمیخواد، پود دیگه نمیخواد، ساختمون نمیخواد، هیچ، همین، زمین و اینم میشه ولی آدم روش میکنه اومد. برابر این علعبودونی هادا سراط مستقیم، تفسیر واضح و روشن همین از فهم از کلمه سراط و مستقیم و راه معتدلی است که خدا به زندگی همه انسان از زمان حضور قرآن ببند،